در ادامه صحبت شما و برای در واقع تکمیل کردن این صحبت ها من باید از دو زن بزرگ تاریخ خمطور که شما هم اسم بردید باره دیگه یاد کنم و راز عظمت این زنان رو متذکر بشم اگر هاجر و خانه هاجر مبدل شد به خانه خدا جدای از تلاش و جهادی که ابراهیم کرد حاصل تلاش خود هاجر به عنوان یک زن هم بود که البته تنها کسی که میشه گفت انگشت روی این جهاد کبیر هاجر گذاشت دکتر شریعتی بود باید. حاجر ببخشید من اسم دکتر شریف دوبولی قد من مرکولم شما رو بشکنم و این رو اضافه کنم به عنوان قفلتی که صحبت نشد چرایتی به عنوان یکی از بزرگترین اسلام شناسان بر حق و ابراهیم شناسان و محمد شناسان تاریخ جدید جهان که واقعا از این لازم اصیر و فرد بود و واقعا از سیمای بر حق اسلام قبار کرد شاید هیچ کس نتونست این حقیقت ضد نژاد بودن اسلام و دین خدا را نشون بده همون حقیقت حاجدی رو و حق خانه ابراهیم رو نهایتاً رسان به واقعه امام و خروج امام از کعبر که به دیگری است و چرا خودش تونست این حقیقت رو بینه خود زندگی دکتر جریتی اصوه خود برندازی نجادی بخشی تو باید بود همطور که داشتم میگفتم حجر ابتدا از همسر خودش دور شد و تسلیم امر ابراهیم شد پس اگر حضرت ابراهیم تسلیم امر خداوند شد حاجر هم به عنوان یک زن تسلیم امره همسرش شد و دوم این کاری که حاجر کرد این بود که قومی که حضرت ابراهیم بعد از 15 سال به سمتون برگشت اون پسر خودش رو و کسی رو که 15 سال از اون مراقبت کرده بود این هر مادری فکر میکنم اینو خیلی خوب بتونه لمس کنه که چه کاری بوده به ابراهیم سپورت تا اون بره و اون رو زد به سری رو که تماما میتونست مال حاجر باشه و اگه حاجر رو بود و 15 سال در بیاوان براهود او را زنده نگه داشته بود و حالا اینو رو تحبیل خدا داد تا زد بشه پس از سوی ما باید حاجر رو به درجاتی برتر بدونیم چون برای حاجر اسمایل همه چیز بود اگر ابراهیم سارا رو داشت حاجر فقط اسماعیل رو داشت و برای یک مادر مادری که فقط یک فرزند داره و یک پسر داره و پسری که تمام اون رو به تنهایی خودش بزرگ کرده پس حاجر کاری برتر از ابراهیم حتی به نظر من انجام داده برای همین ما نباید خونه یک عبر رو به ابراهیم بدونیم خانه هاجر بود که خانه خدا شد چون ابراهیم اصلا کنار هاجر که زندگی نمی کرد اون خونه زندگی ابراهیم اون هاجر بود که با پسرش اسماعیل در اون خونه زندگی کرد و خداوند هم خانه یک زن رو زنی رو که بیکس بود و تنها بود خانه خودش کرد. بگذارید من یک سؤالی اسلم می گونم. پس به نظر شما برای چی هاجر اینقدر نام و عظمتش با این کار شده و محدود شده؟ این دیگه چه معنی خب این سبب که همیشه تاریخ نویسان مرد بود. یعنی نجات پرست بودند. بله. اینا هم هاجر نجات پرستی کوفر. خب همونطوری گفتم تنها کسی که اون هم به واسطه ای ایمانش حاجر رو معرفی کرد دکتر شریعتی بود و خب حضرت مریم نیست اگر ما اون رو عنوان یکی از همون پنج زن میدونیم علتش این بود که مریم از همون دوران کودکی از مادر خودش جدا شد اگر حضرت مریم حضرت مریم شد نه به خاطر این بود که در دیری زندگی کرد الان خیلی دارم در دیر زندگی میکنه ولی حضرت مریم میشه حضرت مریم به خاطر اینکه از مادر خودش و تنها والد خودش که در قید حیات بود جدا شد از همون کودکی در واقع میشه گفت که چنین رشدی رو پیدا کرد تا تونست پسری رو پرورش بده و در واقع از سوی خدا برگزیده شد تا در رحم اون مسیح جای بگیره یک نزاد بله و واقعی در تاریخ اتفاق افتاد که هیچ وقت دیگه تکرار نشد هردو دوی این دو زن به خاطر مبارزه‌ای که و یا جهادی که بر علیه نژاد خودشون کردن به این عظم از رسیدن خب تمام زن‌های دیگه ای هم که در تاریخ اسمشون چه بسا برده نشده اون هم همطور که گفتم به خاطر اینکه تاریخ نویزها مرد بودن اگر رشدی بوده و اگر ایمانی بوده تماماً به خاطر جهادهایی بوده که اونها بر علیه نجاد خودشون کردن همطور که مادر حضرت موسا هم به خاطر اینکه فرزنده شیرخاری خودش رو به آب رها کرد و به خدا سپرد و به خدا اعتماد کرد تونست مادر چنین فرزندی بشه اما من تصور میکنم که برای ملموستر شدن این بحث ما باید توضیح بیشتری بدیم در باب این صحبتی که شما کردیم به عنوان که پرستی همون نفس پرستی ببینید وقتی ما صحبت از نفس بشر میکنیم نفس بشر در معنا و مفهوم عامیانه همون منیت بشر این اگر کسی بخواد بگه نفس من چیه کجاست این نفس همون احساس منی است که هر فردی داره اون من نفس بشر هستش اما این نفس بشر خودش حاصل چیست ببینید یک ای که در رحم یک زن بسته میشه حاصل رابطه‌ای یک زن و مرد هست و به واسطه چنین رابطه‌ای در واقع تخمی در داخل رحم ایجاد میشه که از لحاظ پزشکی دارای کروموزوم هایی است که این کروموزوم ها حامل ژنهایی هستند که این ژنها ها صفات و در واقع نفسانیت بشر رو و یا اون اه اه جنین رو در خودشون حمل میکنه پس نفس بشر حاصل نفس پدر و مادر نفس و پدر مادر تداخل میکنه و در این تداخل کودکی نطفهای بسته میشه و کودکی شکل میگیره از این بابت ما میتونیم پس به طور واضح بگیم که یک بشر در پرستش اجداد خودش در واقع داره من خودش رو که همون صفات و خصوصیات و خصائله میپرسته. و باز خود این بشر در رابطهی که با فرد دیگهی برقرار میکنه نطفه دیگری رو ایجاد میکنه که نفس خودش رو در اون لطفه قرار بده پس اجداد پرستی و بچه پرستی تماماً حاصل نفس پرستی فرده به طور بازه از راز فیزیولوژی و پزشکی من این رو توضیح دادم تا بازه تر بشه پرستشی که اگر ما اینجا میگیم اون فرد فقط خودش رو داره در اجداد و فرزندان خودش میپرسته برای اثبات این اب مثال بازهی میزنم ببینید هر وقت که کودکی بر علیه نفسانیت والدین خودش عملی رو انجام بده این فرزند پرستی و این پرستش به ناگاه مبدل به نفرت میشه یعنی اگر بچه نفسانیت پدر مادرش رو ارضا بکنه و بازیچه نفسانیت پدر مادرش بشه که در واقع نفسانیت خودش هم هست و این حاصل یک تقابل میشه گفت تاریخیست در این فرزند و والدین مقبول پدر مدره ولی هرگاه که خودش بر علیه نفسانیت خودش عمل بکنه این عمل که بر علیه خودش انجام داده در والدین اون ایجاد انزجار میکنه و اونها احساس میکنن که این اعمال بر علیه اونها انجام بر علیه نفسانیت اونها بر علیه نفسانیت پس خود این مسئله میشه به طور واضح ثابت بکنه که وقتی ما میگیم نفس پرستی همون نجات پرستی است به طور واضح مشخصه که چرا ما این صحبت رو میکنیم برای همین فرزندان هیچ وقت خودشون به عنوان یک بشر مورد پرستش والدین قرار نمی گیرند و همیشه به با عنوان بازیچه نفسانی والدینشون هستند به میزانی که این بازیچه ای رو تن بدن محبوبند و به میزانی که به این بازیچگی ای تن ندن و خودشون بر علیه نفس خودشون مبارزه بکنند ایجاد انزجار رو نفرت کنند از سوی دیگه شما فرود که نجات پرستی به معنای عدم باور و اعتماد به خداست و تماماً برخواسته از بی است. یعنی فرد به میزانی که خدا رو کافی نمیدونه نجات پرست میشه خب من تصور میکنم این مسئله رو باید باز توضیح بیشتری بدم ببینید بشر چرا؟ نژاد پرست میشه یکی از جنبههای های نجات پرستش هم تا نفسانی ارزای نفسانیست این که صحبت شد. سوای اون ما میدونیم که یکی از آرزوها و آرمانهای بشر میل به جاو دانه گست. اگر ما بگیم که اصولا تلاش های بشر چه هدفی داشته تنها هدفی که داشته این بوده که بشر خواسته خودشو رو دانه بکنه این تلاش ها در همه جنبه ها سیاسی، هنری، پزشکی و تمام جنبه‌ها اگر ما بخوایم بگیم چه هدفی بوده در کل اینها فقط یه هدف، جاودانگی. اما به میزانی که بشر این وعده خداوند رو از یاد برده، خب خداوند از همون به پدر و مادر در واقع ازلی ما این رو گفته بود که شما جاودانه هستید. ولی به میزانی که بشر این وعده رو فراموش کرد نجات پرست شد. چرا؟ چون خودش خواست در روابطی که برقرار میکنه بر اساس تاریخ و اجداد و فرزند این جاوکدانگی رو برای خودش مویستر کنه. پس عدم اعتماد به خداست که بشر رو به سمت اجداد پرستی و فرزند پرستی میکشمه. اگر بشری این ایمانش رو به خداوند از دست نداده باشه و کاملا باور کنه که خدا به اون راست گفته و اون جاودانه است هیچگاه در صدد این قرار نمیگیره که گذشته خودش رو برای خودش به صلاح به عنوان تاریخ حفظ بکنه تا جاودانگی رو ثابت بکنه و اسوی آینده خودش رو برای خودش بسازه تا باز جاودانگی خودش رو برای خودش مهیا بکنه. پس در واقع میشه گفت که نجات پرستی حاصل فاصله و یا فراموشی بشر و عدم اعتماد بشر به خداست و به همین دلیل بشر از اکنونیت فاصله گرفته. وقتی ما میگیم اکنون حاضر اینها فقط خداست به میزانی که بشر به اکنونیت نزدیک میشه یعنی به است که وعده خداوند رو به یاد میاره و به خدا اعتماد میکنه و به همین دلیل و به دلیل این اعتمادش از گذشته و آینده خودش پاک میشه که این مقام امامان و اولیای خداوند هست که در اکنون زندگی می کنند و از گذشته و آینده پاک هستند. همونطور که خداوند نزد از گذشته و آینده پاکه کسی که به نزدیک می‌شد در واقع به خدا نزدیک شد. به خدا نزدیک و همینه با نزدیک. که حاضر از اسماء خداوند هست، خداست که حاضر در واقع بشر در درجات غیبت و قایب بودن و قفلت تسلیم و این قفلت حاصل همون عدم اعتماد به خداونده. ما اگر میگیم که حضرت ابراهیم چرا پدر ایمان لقب گرفت فقط به خاطر این بود که خدا رو باور کرد و به خدا اعتماد کرد بشر به میزانی که به خدا اعتماد نداره خودش در تلاش این قرار گرفت تا خودش رو جاودانه بکنه راه و رو ردش متفاوتی رو برای خودش انتخاب کرد یکی از این راه و ردش گذشته پرستی و آینده پرستی که در اجداد و فرزند خودشو نشونید به نظر من این یکی از راوی رویش اونو بشر نبوده تنها راوی رویش بوده خب میشه گفت من این جنبه های مثل تکنولوژی علم و اینها رو در خدمت این جاودان اصازی قرار داده اما نجات پرستی به طور کلی باید گفت که در زنان و مردان دو جلوه متفاوت داره ببینید دختری که به خانه همسرش میره عموماً از خانواده خودش و از والدین خودش دل میکنه اصلا دلی اونجا نداره و عموما تمام وجودش رو در خانه شوهر قرار میده پس معمولا نجات پرستی برای یک زن به دو جلوه شوهر پرستی و بچه پرستی بارست میشه یعنی زن شوهر و بچه خودش رو ابزار ارزای نفسانی خودش قرار میده و برای جاودان کردن خودش به اینها اعتماد میکنه به میزانی که کافره یعنی زن به میزانی که کافره و به خدا اعتماد نداره و باور نداره تلاش میکنه که از شوهر خودش از امکانات دنیوی که شوهرش براش ایجاد میکنه و از فرزندش به عنوان تفلی که نفسانیت اون رو حبل میکنه استفاده بکنه تا خودش رو در آینده جاودانه بکنه پس شوهر پرستی و بچه پرستی مرمولا جلوه نجات پرستی برای زنه. اما مرد اینطور نیست مرد عموما زن خودش رو به عنوان جاودانگی و به عنوان نجات نگاه نمیکنه. مرد عموما در اجداد خودش و در آبا و اجداد و گذشته خودش م. میخواد این جاو رو اثبات بکنه و بعد در فرزند پسر خودش م. نه تا دختر پسر. ببینید پسر پرستی بشر همیشه یعنی به میزانی که بشری کافر باشه چه زن چه مرد پسر پرسته خب چرا؟ خب دختر چرا اینطور نیست برای پدر مادر چرا دختر همچین احساسی رو ایجاد نمیکنه خب این واضحه ببینید این از لحاظ میشه گفت آناتومی بدنی و فیزیولوژی بدنی یک زن و مرد معمولاً این مرد هست که نطفه رو از خودش خارج میکنه و به بیرون پرتاب میکنه نوتفر از مرد خارج میشه تا در جای دیگری به زندگی ادامه بده. ولی دختر به خاطر اینکه پذیرنده است، عموما نطفه رو در خودش مدفون میکنه. پس دختر نمیتونه نجات رو در آینده استمرار بده. ولی پسر به دلیل اینکه نوتفر رو از خودش خارج میکنه و در دنیا وارد میکنه میتونه اون رو بر زمان وارد بکنه و در تاریخ استمرار بده برای همین بشر کافر پسرپرسته و از دختر بیزاره و عموما دختر رو اصلا بچه نمیدونه این البته خصوصیت کافر زن ها هم پسرپرستان به میزان کوهش خب من این توضیحات رو دادم تا این مغوله نجات و نفس پرستی بشه و صحبتی که شما فرمودین که مبارزه بر علیه نجات همون مبارزه بر علیه نفسه بیشتر خودش رو نشون بده فرد به میزان این که اگر فردی واقعا بخواد خودش رو فریب نده و در عملکرد بیرونیش به خودش بباورونه که واقعا چقدر داره بر علیه نفسش نجات مبارزه میکنه، جهاد میکنه. نجات و مبارزه بر علیه نجات یک صورت واقعی داره که هیچ راه فرینی هم برای کسی نداره. پسر به میزانی که چشم بر پدر و مادر خودش به عنوان هویت نداره و از اونها به عنوان چه هویت تاریخی و چه هویت معیشتی تغذیه نمیکنه و بر روی پای خودش نیسته در واقع به سمت خدا میره و مسئول زندگی خودشه از اینا خیلی خلاصه بره صحبت میشه ولی خب در همین حد من میگم زن هم به میزانی که به خدا اعتماد میکنه و شوهر خودش رو روزی دهنده خودش نمییابه و اون رو به صلاح خدای خودش نمیکنه و فرزندش رو بازیچه نفسانیت خودش نمیکنه به این همین میزان این زن در دین قرار داره و بر ایمان خودش رفتار میکنه, میکنه. مثل هاجر ولی مثل هاجر بله مثل, مثل حضرت مریم مثل حضرت فاطمه و مثل تمام زنهایی که شما نام اه من یک سوال داشتم این توضیحات رو فکر میکنم در همین حد کفایت میکنه ببینید الان ممکنه یک همچین سوی تفاهمی پیش بیاد ما الان در جهانی زندگی میکنیم که در کشورهایی که بیشتر مدرنیزه هستند کانون خانواده سال هاست که برافتاده که خب اصفه این که چنین کشورهای آمریکاست. الان در کشورهای آمریکا من خانواده دیگه وجود نداره ما فقط مردها و زنهایی رو میبینیم که یا دارن به تنهایی دارن زندگی میکنن یا دارن با بچه زندگی میکنن ولی هیچ ای به طور کامل وجود نداره خب با این صحبتهایی که ما کردیم ممکنه این سوء تفاهم یا سوء برداشت بشه که خب هستن که آمریکایی از نژاد بری شدن و به این مقام گویی و نه شوهر پرست زن آبیکایی چون همون اول شوهر خوش اصلا شوهر نمی کنه مم. و بچه‌اشون که اون من میفرسته تا جایی که امکان داشته باشه به شیرخوارگاه اگه من به این مذه بوده که بالاخره تا جایی که امکان داره نه شوهر داره نه بچه داره مم. مرد به همین ترتیب خب من فکر برای اینکه یه همچین سو تفاهمی اتفاق نیفته یه مقداری راجع به این وضعیت خانوادگی که هم آینده کشور ما هم داره به همین سمت میریم و کلا آینده تمامی کشورها چون مدینه فاضله تمامی مردم کافر آمریکاست ما داریم به همچین سمتی میریم و به نظر میاد که اونها از نجات از گذشته و آینده بری شدند آیا این ایمانه که مطمئنا نیست ولی خب بیشتر باید توصیح داده بشه بس بخواهید این مسئله رو بیشتر توضیح بدید ببینید ببینید حالا این جم اسلام گفتیم یعنی راه تسلیم راه خوشنودی راه رسیدن به خدا خدا به معنای کانون وجود مطلق و جاودانگی روسته؟ اولین مشکل آدم آبا هم در بهشت آنجور که در قرآن میخونیم در جاودانگی تردید کردن از همونجا از بهشت شدن و به اون مشکلات و ابتلای به ابلیس خب انسان در جستجوی حیات جابید مگه نیست نجات پرستی کافرانی و جاهلانی بشر به سودای رسیدن به میگیست یه درست ولی دلیل وارونه است این مسئله شجره ولی شجره دقیقاً شجره پرستی ولی نکته بسیار جالب اینه شجره پرستی شجره ممنوعه یعنی در واقع الهی تاریخی یعنی تاریخیت و نجات پرستی دقیقاً خب ببینید بعد اسلام با مفهوم راه تسلیم به خدا شدن یعنی تسلیم وجود و جاودانگی شدن و لذا وجود و جاودانگی یافتن ولی انسان میخواد در ظرف عدم این جاودانگی رو به دست بیاره ولی به دست نمیاره با این کار خدا با شک با خدا با شرک با خدا به نجاب پرستی میشه به نیت جاودانه شدن در عالم خاک در علامه خاکی که محکومه به فناست پس انسان در ظرف فنا نمیتونه جاویدانه بشه بله همین انسان نجات پرست رو شما نگاه کنید آدم های نجات پرست مردان آبا اجداد پرست و زنان بچه پرست به میزان این پرستش کاذب ببینید چه موجودات رنجور و دیوانه این رنجور و دیوانه اونو رو کنید در خودتون زنان فرزند پرست بیماران روانی هم یعنی به پرستششون و مردان آبا و پرست چه مردان متجاوز ظالم و احمقی هن. مثال سیاسی میزنیم چون این دور زمان همه سیاسی هم این مثال هار به تدرک میکنند این روز جهان ما تحت فرمان یک بیمار روانی و یک ظالم احمق هست که جنون ازش همینطور فوران میکنه و اون آقای بوشه از یک خاندان نجات پرست که پدرش هم این کاره بود و فقط به قدرت پدرش این همه داره جنون و جنایت از خودش صادر میکنه. ببینید این یه گسفه کاملا واضحه استش. پس نژاد پرستی چون تلاش از بهانه برای احیای جاودانگی در ظرف فناست طبیعتاً انسان رو به تناقض، به تضاد، رضا بیمار و رنجور میکنه، مریض میکنه. ما گفتیم اسلام نیروی سلامتی در مقابل راه رنجوری و بیماری گمان راه نجات پرستی است ما ای تعریف از این تعریف پزشکی میدیم دیم حضرت این فرماد که پیامبر اسلام بزرگترین طبیبی بود که قرآن رو به عنوان نسخه برای سعادت و سلامت به بشاری درزانی داشت بنابراین بس گفتش که راه سلامت تن و روح و روان راه نجات و از نفس خیشدن در نقطه مقابل راه بیماری و عذاب راه نجات برستید ایش در, در این مورد بسیار میشه صحبت کرد ولی اینو رو معاول میکنیم به اندیشه و تعمل در نفس کشتن خب ببینید شما فرمودید به نظر میرسی که جوابه مدرن از غرب شروع شده و کل جهان رو دایی دربار میگیره در بسوی فروپاشی خاندان یعنی بسوی فروپاشی هستی مرکزی نجات یعنی خانواده بشار که بشار آگانو عمد این عذابه عذاب نجات پرستی منجر شده به نجات برندازی جبری بشر با دست خودش که فروبا... بله که این از نفرت نسبت به ازدواج شروع میشه تا باشی خانواده ببینید بنابراین این عذابی هستش که بشر خاطر جلالش جنگش با دین خدا و با خدا بهش جبران و به طور زجر مبتلا شده و بیخان و بیخانمان شده پس این گریز بشر مدرن از ازدواج و از پذیرش مسئولیت نسبت به همسر و فرزندان این است و عذاب انکار خداست این در این صورت ولی یک حق و عظیمیان در این ابتاله نژاد وجود داره و اون اراده الهی است خدا و نسان رو خلق گرده تا انا لله و انا اله رو وجود عالم از اوس تا به سوی او برمیگرده از نزاده و به سوی نزاد برمی گرده پس مبدع و معاد نژاد نزاده خب، پس جبرن به اراده الهی نجات بشری داره به سوی خدا میره ولذا چون کافره به خودبرندازی رسیده این بروزه ما میگیم خود خودبراندازیهای های جبری و عذابابر و جنون آساب آمادی حولیه بشر با اراده و انتخاب که این کار نمیکنه با عذاب مجبور شده خودبرانداز بشه خودبراندازی یعنی نجات براندازی از خودش و این حب تاریخی بشر و رازی باقار بشر در عالم میخواه به اراده خدا بشر جبرم به سمت نظاب داره میره و نجات خودش رو مزبوره براندازه بس این حق بین طالب مواصبی مثلا رو درک کنید این رو بشر تسلیم میشه و با محبت از نژاد خودش فاصله میگیره که این راه رشد و تعالی است بله. و راه جهشتی است برای رفتن به سوی خدا بله. و اگر خودش با انتخاب این کارو نکنه با انزجار و کینه این نژاد رو از خودش پاک میکنه بله. که این همون راه دوزخی برای رسیدن به خدا دقیقا ببینید کسی که با اخیار در راه دین از نفس خودش ببین ما میگیم نجات براندازی از نفس خود باعث بشه این همون ظلم براندازیه در قرآن مؤمنان در قرآن اومده که از خود ظلم‌زدایی کنید از نفس خیش این همون نجات‌زدایی است تجاوز نجات پرستی همون نفس پرستی و خودپرستی است ببین که پاک میکنید نجات را از خودش ها میتونه عزیزانش رو داشته باشه میتونه داشته باشه بنابراین نگاه کنید خود باز باز پیچاندگی نهایی از وضعیت موجود بشر بر روی زمین رسیدیم ببینیم کل نژاد نژاد باسری داره رو به میره تا کل بشریت به خود براندازی رسیده این بشریت کافر با عذاب و بزجر به زجر تا به همون روی تن در که دین خدا عمل کرده بود یا اینکه میگیم از دین لو واقه لو دین خدا هر آن واقعه است عمل می‌کنه داره عمل می‌کنه ها در کافران عمل میکنه در مومنان عمل میکنه در مومنان با اختیار با انتخاب و از ضرب تسلیم و از به رحمت و رضا و در کافران با لج و زور و باستم این بازه آدم به میزانی که آب و اجداد پرست خودشه به هم میزان از آباء و اجداد خودش نفرت داره و اونها را لعنت میکنه اینا رو در آدم میبینید در در اینا اگه بگی بابات نمیدونم دماغش خطاش میخواد خون بریزه در این حال 5 دقیقه بعد خودش داره با بابای خودش مشت می‌کنه مردهای خودش رو درند میکنن. مادر به هم میزانی که بچه خودش رو ظاهرم داره میفرسته و هم میزان میخواست سر نباشه و آخرش هم نره بکنه. و از همه ارشون کینه به همین خودش ناحق بودن نجات پرستی رو واضح میکنه. تا چدی نجات پرستی برخلاف سلامت. یعنی برخلاف اسلامه. اسلام یعنی سلامت ب انسان اشیای خونش رو به خود شما بیمه میکنه اعضا و جواره خودش رو داری بیمه میکنه بیمه دماغ بیمه گوش بیمه دل و گلوه و کلیه و کبد بچه های خودش موی سر بچه هاش بیمه میکنه همه کفره. این نشان های کفری و عدم اعتماد به خدا عدم اعتماد به خدا خدا خدا حریم نیست سلامت لذا به میزان که از خدا دور میشه و خدا رو و دین خدا رو و احکام دین خدا و انبیا و اولیار انکار میکنه به عذاب نابودی میفته برای اینکه آدم خاک قلم رو تجربه انسان از نابودی و عدم خودشه و انسان در آدم خاک باید نابودی خودش رو درک کنه و باور کنه تا رجوع کنه به وجود خدا و تا جا بدانه به بشه و انکار میکنه خدا را و دینش رو احکام عملی دینش رو مجبور به این بیمه ها میشه. این بیمهها ها کفاره کفر انسان سال خدا هست. و هرچی بیشتر بیم می کنه بیشتر در بیم میفته بله. و بیم زدهتر میشه زبری از بیمش کاسته نمیشه خود همین عذاب خودش کافی است بنابراین باستی نتیجهگیری کنیم که ظلم کارخانه ظلم نجات است. نجات تنها مهد ستم نه یکی از قلمروهای ستمه تنها قلم قلمروه ستمه اینو باستی ما بتونیم و همین دلیل دین راه نجات براندازی است هره مردان حق در طول تاریخ در نجات خود قریب و محجور و برکه در زجر بودن و اکثرشون کشته شدن مذاهب و مقاتب تمام مردان خدا و خدا پرستان در میان نجات خودشون مطرود بوده بودا از هند تبییز دینش در اونجا یک اقلیت کچه که تحت زجره مسیح در بنی اسرائیل مطرود شد محمد در عرب و همه در ایرانی ایران ماجوران و مطوب بودند و بسیاریشون شهید شدند خب ببینید پس نجات ضد حق نجات پرستی در نجات پرستی حقی سلامتی عزتی به دست نمیاد والذا در کمال دین اسلام که دین محمده و اسلام محمدی است امامت مظهر خودبراندازی نژادی است که آشکارترین سیمای خودبراندازی که حتی بسیار کاملتر و جامعتر از خود برندازی محمد و عیسی و موسا و واقعی کربلا و امام بود وقتی رفت برای تواف خانه خدا دید که خانه خدا خانه نجات پدستی اعراب قریش شده و اونجا جهل که داره پدستیده میشه خدا نمیشه قریش داره پدستیده میشه و تنها کسی بود و اول کسی بود که در حریم امنیت الهی در اونجا در کنار خانه کعبه شمشیر کشید و از کعبه خروج کرد تا راه دین خدا را نشان بده و گفت اگر قرار دین خدا فقط با ریختن خون من زنده بشه من این کار رو خواهم کرد و اونچه واقعی بود در کبه رو اختاد خاندان خود را به دست خود برای خدا و تا دین محمد زنده بمانه تا دین خدا زنده بمانه خود براندازی که از خاندان خودش کرد در تاریخ بشر هرگز اتفاق نیفتاده از کودک شیرخاره گرفته تمام خاندانش رو او در آنجا به اختیار خودشان البته همه مؤمنان به او بودند برانداخت ولذا امام حسین ا واقع کربلا شد سفینة نجات بشریت شد و آشورا در واقع آشورای نجات شد و آخرین قلم رو احیای دین خدا و دین خودش شد و امامت دقیقا به این معنا بود زیرا خود امام خودش وجود شکلش خانه خداست و محل ظهور نور است برای کسی که امام داره امام زنده داره در واقع خانه کعبه پرستی دیگه برای یک در درشانش نیست باست امام رو بفرسته زیرا اولین امام یعنی علی در خانه کعبه متولد شد از با اونجا بیرون خانه کعبه محل تولد امام بود امام به مفهوم انسان کاملی که خدا ازش آشگار شد یعنی اهدیت و سمدیت ذات انسان انسان کامل آشگار شد برای بود که تمام مذاهب در اسلام خط شدن و در وجود امام کامل شدن برای یک شیعه خانه خدا خانه زنده خدا امام امام وجود امام خانه خدا است و خانه زنده